مقام سرناجام اعضای محترم رحمت الله رحمتش يا هر شد برای اثبات مقاله حل و اخباری فرترض کل رواياته شده که مرحوم صاحب بصائر این مناسبت برگزار شد برای آقا در خلال بحث های گذشته روشن شد که مرحوم ملا محمد امین در برنامه دهم به این فکر افتاد که ما برقصد روایات احلبه سلام الله علیه مجمعی میتونیم یک اصول جدید اصلا یک فقه جدید, اصول جدید. یک مکتب فکری جدید تیریدی بکنیم این تمام صحبتی این بود که ما این روایات رو می‌خونیم هدف او این بود که چون دیگه در زمان ایشان نوشته های علام الله تعالی علیه در قصور به روشی رو که علامه و دیگران البته علامه روی بحث حجیه که خبر بیشتر تأکید داره تا دایی ایشان مرگ محقق یعنی محقق رضان الله صالح علیه و اینکه خب دایی ایشان از توصاب شراعی مرد بزرگوار به دنبال حجیه که خبر صحیح نیست اما علامه هست و اینشان رو در خلاف بحثیر یه مرشن میشه خود مرحوم محقق هم مستقلاً اصول داره که معارجل اصول و مقدمته‌را هم در اول کتاب معتبر چند صفحه اصول داره ایشان خود مرحوم محقق خیلی برجسته اصول مرحوم محقق چه در که چه در اون جایی که داره شده در اون جایی که ضمنیه مقدمه مجذبه خلاص علامه که کتاب‌های مفصلی در اصول داره هم به اصطلاح امروز ما یک حلقات داره سه کتاب رو برای سه مرحله نوشته مبادی الوصول که ابتدایی یا تحریب متوسط هست و نهایت و اصول که کتاب نهایی است که تالام چاپ نشد و به نظر میسه 4 سال شروع کرد به چاپ امکان شده نشده نهایی الان چاپ نشد و تحریب شد و تحریب مبادی شده بود اما نهاییشان غیر نه. از اون که ایشون مونتهام داره مونتهر اصول هم داره از نهایه اصول ظاهرا دو تا یکی نباشه به هر حال این نحوه اصول در میان شیعه دیگه از این قرنه هشون را اختاد مثلا یه علامه این تقسیم حدیث و حدیث صحیح و حسن و موسف و بعد در هر کدوم خصوصیاتی چیزی در حدود مثلا دویس سال بعد از علامه دویس پنجه سال مرگون محمد امین استرابادی ادعا که اصلا کلن این اصول باطله حرفش این بود برای این من هر روز برم کلماتش رو کنم اشون اعتقادشون بود با مراجعی برگاریات احل دید اصلا باید تفکر رو عرض بکنه نه این که خلال مبحث درست و خلال مبحث باطلی کل محصب اصولی رو باید از سر تا سر عرض بکنه این خلاصه تفکر مرغوم ملا محمد امین استرابادی. چه در ایامی که ایشان در مکه بود چه ایامی که در مدینه بود ایشون این مقرد رو در دو کتاب مشهور شهاد مدنی یه فعادت تو فعاد مکیه رو نیدم اما نقل هایی که درم چیز نداره میشه همین فعاد مدنیه و عرض کردم حکوم در, در میروزی هم عبارت ایشون ایشون حدود دوازده برس کل اصول رو من البد و الاخت دوازده برس کرده همه رو درش مناقش میکنه این سر این که ما یه مقدار میگیم به حرفای اختباری ها تعمل بشه این یک ای مدعای سنگینی بود که ایشون ادعا بیکرد با مراجعه دروایات احل ده اصلا در میارید که در فقه شیعه و اصول شیعه کلیگی تفکر با اون تفکر رایجی که مثلا توسط علامه بود فرق داره این مدعا روشن شد ایشون باید کل مکتب و اصولی رو دیده سآل ببرده و در مقابل یک مکتب و اصولی مقابل درست میکنه این تمام تفکرات، مرهوم مولا محمد عوی نیسته اوه طبعا منپس بین او صحبت کمی نیست که انسان بتمانند از اول حصول و تا آخر حصول همه رو به هم بریده و ادعا بکنه که از روایات احلبه چنین درمیاد و در مقابل یک مستب متکامل و مترابط و همه هم عرضه بکنه حالا در مقام عرضه خیلی ایشان به نظر من چونشون بیشترین حرفش اینه که باید به روایات برگیدین هر جامعی نبود احتیاط بکنید خیلی مکتب متکاملی در اون معنام اما در منابشاتش چرا اضافاً از خیلی زحمت پشیده افتا یقا و هر صورت که این جریانشون با جریان ایام سفایی هم میبود از باسته فوت ایشان مبارن تقریبا بله نه مبارن با اوج سفایی هست این یک مقداری هم به اصطلاح ترسط احتمالا جالب حکومتی این فکر تعیید شد خود مرحوم صاحب وسائل که از افکار ایشان استفاده کرده و اینجا این بابی مفصل دورده از کنشم با خود مرحوم صاحب وسائل شیخل اسلام خراسان بوده یعنی خراسان به لحاظ به اصطلاح با قول اجرایی ایشان متولیه خراسان ایشان بوده شیخ خود اسلام که خود ایشان از بزرگان اخباری هست و انطافا یک مقداری موثر بود تا بعد که توسط آین اصولی ها مثل مرحوم رحیل بهبهانی اخبار ایشان مدنه قادی رو میگرد و حملات تندی باز از اون طرف شد البته من حیث المجموع این منشق شد یک مقدار تغییراتی بشه اینه اینکه حالا کلن مثلا اگر براءة در اصطلاح خودما به معنی نفی حکم بود از زمان مرگون وحید بهاره معنی نفی حکم ظاهرا نشد شاید در کلمات اهل سنت نفی حکم الله به بود تدریجا آمدن مصطحات و اصول رو حجت نکردند دایره اصول رو از دایره امارا جدا کردن حالا خلال بحث ونده ان شاء الله توضیحاتش عرض می‌کنیم یک تغییراتی در تفکرات ما پیدا شد اما این که راه های رفتن انصافش که خیلی هم مشکله های فکرشون مشکله یه مدارش سابقا شهر دادیم یه مدارش همی بعدها. حدیث شماره چهل و دو حدیث شماره چلیه اکی من میخوام در همین باب به این صفحه‌ای که من دارم صد و چهل و دو صفحه صد جلده این روایات از کتاب کشیه محاسن برقیه و انا عبیه انا علی ابن الحکم مرحوم برقی پسر از پدرش درسته این قائدش هم هست بعضی در واقع هست که برقی خودش از علی ابن حکم نارد از که اون رو داره واضحه. نیست ان محمد ابن الفوزی ان بشر الوابشی بش در این نسخه موجود بشر آمده این در حالا مطبوع هم هست یا نه اما شخصی به نام شریس الوابشی داریم که محمد بن فوزیل از ایشان نحل میکنه ان محمد ابن فوزیل ان بش هر حال من از کردم این که بیم, بیم یک نصه بش راست و یک نسخه شریس رست فعلا من بش رو در این طبعه میشه این در شریس باشه یا شرعیس باشه شریس باشه اونجا دارم در کتاب شما در محاسن مطبوع نوشته شریس الواب من یکی خودم هاشی دار اونجا نوشته که در محاصل مطبوح فرم میکنه؟ بلا, بلا. بلا. آشیه سرم شریس لبا بشی توی یه روایتی توی یه کافی هم شریس داری نه این لبایت؟ بله به هر حال این شریس یا بش یا چی باشه نمیشنسیم فرمه آشیه ندارد انج یا برون یزید جعفی این بعضی افرادی مثل بش یا شریف سری میشنسیم چون خط جابر یه خط فکری معیین بود لذا خط شایع نبود بین اصحاب ممکنه که این افراد شناسایی نشده باشه حال سهل تو عباد جعفن علیه السلام انشه امنت تفسیر فعجامهی من از حضرت باقیر سرعال میشه کردم در این که جابره نیزی قطعا خدمت امام باقیر و امام صادق رسیده و از این دو بزرگ بار نقل کرده جای بحث نیست خیلی عجیب مرموم نجاشیه عباس داره که شبهه میکنه در روایت ایشان از امام صادق و باقی خیلی عجیب هنوز هم نفهمی یعنی ما هنوز سر نه و واقعا نجاشی میخواد اشکال بکنه که ایشانو حدیث نقل نکرده خیلی بعیده خیلی قال سال فعبا جعفر انشه به تفسیر آخر فقل تو کن تعجب سنیفی ها این مسئله به جواب غیر حاضر فقال یا جابر این للقرآن بطنن و لهو زهرون اون روز توضیح هم عرض کردم چون این کتابت های که اوها می داره در کتابت اصلی خط کوفی بطن و باطن رو مثل هم می نرشن زهر و ظاهر هم مثل هم. به اصطلاح خودشون علف متوسط رو نمی نرشن ممکن است بطنن بخونیم ممکن است باتنن بخوریم انقل آن بتن و له زهر و زهره زهران این که گفتن تا صعت ابچان که حالا من به صند روشن ندادم اما این داریم ولی زهره زهرا اینم هم همین جاات منحصر نبیید منحصر ص داره هم زریفه مثرش هم فعلا منحصرن کتاب محاسن برلی که اصوللا روز کابهایی در دوسه محساب میشه حساب روز تصا در اول ما نیست یا جابر و سه چیون آن ابد من اصول رجال من تفسیر القرآن. درسته این ارکید به ما نفهمیده. اینه که آیه یکون اولها فیشی و آخرها فیشی و هوا کلامون متسلون مسال سرعتان وجود. ما در همی بحث از ظاهر می‌آید ترین که گری کلام روی خصوصیاتی دارای معانی متعدد میشه بلکه میشه خیلی بیش از یک معنا، ده معنا، صد معنا درش پیدا کرد در حال سند حدیث روشن نیست، مصدرش هم خیلی روشن نیست و به اصطلاح رابطه هم به مسئله حجیت ظواهر نداره. ار کشیفی کتاب رجال ان جهر بن معروف از در این کتاب کشی ایده از موارد جهر معروف هست نمی‌شسم حالا یک شبهه هم هست آیا ایشون استاد کشی است یا استاد نجاش عیاشی باشه استاد استاد. دیگه اون بحث نمی‌شم اون طولانی مقدمات و مؤخرات دوره من یعقوب ابن یزید پیشون جز دو اجدا هست من از کلم خود دقت کنید چون مرموم کشی خودش در کش ها سمرغن بوده توی مشایخ ایشان تا میجایی که ما دیدیم یکی دو نفر از اهل خوم هستن خود دقته یعنی ایشون از کش از نیشابور هم هستن که توسط شاید به فضل مشازن. از قوم همون این معناش اینه اگر به حساب این ظاهر نگاه شما خیلی شما احوال ازشون ندادیم از کشی ظاهرش اینه که مسیر ایشون از همون کش شد همون قرآن دوز به تاکی کستانه دوز به این که الان دوز با کستان از این که ایشان الانش هم کنیست همون قرآن باشه دور آلا چرا تو بودم بعدها ایشان در علمی نبودن دور بوده، و تا قم و تا نیشابور رو خبر بدید کوفه و بغداد رو خبر ندید قم هم از یکی دو نفر نگفتن که اونا رو نمی‌شناسین در این کلاغی نمی‌شناسین از نیشابور هم شاگرد فرزون هم توصیف صحیحه من برام این شاگرد فرزه اون رو این مقدار میشن. این کل معلومات ما ایشون مجموعاً حدود 50 و خرده‌ای 51 53 استاد دارن در این که برده باشه که احتمالا برایشون استادشون نباشه نه سر ج از این و ای یه چار پنج و یک چه 5 تا ه تا بقیه نه به خاطر دور بودن از استاد علمی که اون جه معرووط کللا استستادیریشان باشه.ط از هم ببینیدی از کسی که در اون شهر هست رابطه ای او با میراث‌های کوفه کوفهه ما, ما رابطه ای او با میراث‌های های ما، رابطه او با میراث‌های این با مطاخب خیلی جه ها هم مشغوله این مشکل کار منه این توضیحی که مثلا این جهتره به معروف اما یعقوب بن از بزرگان برداده خیلی فوق العاده از اون کس دسته او هم بود مرد فوق العاده‌ای اسم مرحوم یعقوب بن یاسین کشی ظاهرا اعتماد کرده بر مشایخ در 2 و 4 مثلا تا برسون خودش رو داره گاهی به کوفه یا بغداد رسید تا ایاشی ایاشی جوزه بزرگانه دهده توش نداره اما از این مشایخ اینجوری هم داره مرموم که نمیشنستیم چون روی فلسطان ها به یعقوب یزید رسیده انا همماد ابن ایسا تو زهن من الان شد یعقوب میخوره به طبالش اما بعید از اون رو کرده باشه انا همماد ابن ایسا انا ابراهیم و عمر یمانی این تازه غزلی مدام تو تضییع شده بلکه نشه راست ان الفزیل ابن یسرار ان ابي جعفر با قطع نظر از اون واسطه اول کشید، صحت صحیحه چرا که کتاب اصلش رو چند بوده از یعقوب بن به بعد خوبه فقط نقطه ابهام کجاست این شما حدیث رو فقط به لحاظ فلان صحت اون ضعیف نقل تصور رو این حدیث رو در خارج چینطوریه همیشه مطالب تاریخی رو تذیه بکنید. تذیه اینه که ایشان چطور از چکش رسیده به یعقوب نژدی در بغداد بوده. خوشاخه وقتی میگیم ضعیف، ضعیف به این معنا از یعقوب نژدی به معنی همه بزرگان اصحاب، بعد به استثنای امام عمر، ضعیف از بزرگان هست. خود یعقوب نژدی من از بزرگان. فقط اشغال سر جعفر معروف و کیفیت رسیدن ما به ایشانه. نکسی دیگه نگری. قالع اتا ابی رجل انتقاله النبی الله نعباس یاز امان. نه هو یعلم و کل آیات النزله فِالقرآن. فی أي يوم انزلت و في ما انزلت إلى الهدیز. که مثلاً امام باقر من که ودند حرف نهفید نعباس درست نیست. امام باقر 9 ساله ودند در ساله ودند که نعباس فوت کرده. فوت این نعباس در زمان عزّ سجاده. عمره چون امام باقی به همون معروف پنجه و هفت ولادتشونه و ابن عباس اون 68-69 حالا من نمیم ده یاد گهسالی میشه و در بعض از کتب ما مناظراتی هم به این امان باقی ابن عباس هست که باید برای امامت و مقامات معنیه به حسب قائده ابن عباس که مثلا حدود سال هفتاد وفاتشه چیزی نزدیک هشتاد سال خون شده چون ابن عباس به نفته همون حدود 70 سال ابن عباس تولدش همون سالهای هجرته تقریبا آنه گفته شده سال قبل از هجرت لذا در وقت وفات پیغمبرم ابن عباس 10 ساله بوده 9 سال 10 سال 11-12 گفته شده تقریبا تولدش با هجرته این تقریبا 70 ساله بوده امام باقی حدود مثلا 10 سال 11 سالشون بوده فعطا عبی رجان فقال عبدالله ابن عباس یز اونه کل آیت نزرس الق این مطلب به این سیره من در کتب اهل سنت نیدارم اما در من نیدارم انکار نمیکنم. اما در کتب اهل سنت در زیل آیه و مبارکه ما يعلم تعویله الا الله الراسخون فی العلم از ابن عباس رضي شده عنهما راصخین این هست. یعنی مؤید این مطلب از ابن عباس شده که من تعبیر قرآن رو میدونم انا من الراسخین فی استدهار مرگوم صحابت های و خواه سریحان فی دعوا ابن عباس فی انکار دعوا ابن عباس و رواه و به سند آخر اگر آقاون رجال کشی پیشون من مخاطم مراجعه می آزه خیلی فراموش نگم کتاب این کتاب های برنامه های کامپیتر کتاب کشی پیشون باشه به غیر از این سند صفحه 36 حدیث شما رو یکه اون سندش رو اگر کسی کامپیوتر همراهش باشه بخونه من ببینن سن دیگه چیه چون مرحوم صدوق مرحوم شهرخور گفته و رواه به صدرن آخر که ببینیم از چه راهی به این روایت رسیدیم و رواه علیق ابن ابراهیم فی تفسیری مرسلن راجلی تفسیر ادون صحبت می‌کنه فقط که این کتاب موجود که قطعا کتاب تفسیر نیست اینکه در شموله ای نیست این کتابی که الان دارید این که حقیقت این کتاب چیه بحث دیگری است که جاش الان نیست اگر آن کسی از آنی که از کامپیوتر همراهش این از توی کشف کشیفی از این حدیث شما یک شما زیل حدیث شما دیگه به بسند دیگه ایشون یا جوی دیگه ای استخدار از این آقایی که تحقیقه کتاب کردن ننوشتم در اون تحقیقه داره که بسندن آخر در زیلش چی داره ها چیه زیل شما ده چی رو دو مسائل چی ها فقط آوریس نه میدونم در زیل تشکیه یکی یا دو تا آوریس اینجا نوشه صفحه ستی و شیح حدیث میکنه اولیشون نوشته جلد یک صفحه ستی و همتا حدیث و صفحه ستی فاصله بله اون احتمال از شاپ دو جلدی استفاده کن حالا حالن حدیث شماره چهل و ات سعیش شرسی نسید رو همین تفرشه معرب کلمه تفرش اصلاح کن از تبرسی فل احتجاج عن نبی صلی الله علیه و علیه و سلم فی احتجاجی یوم علی تفسیر و کتاب الله و دایی اما البته حدیث قدیری رو که مرمون احتجاج نهار کرده خیلی طولانیه چند سرفه است هم به مناسب قدیر جزازانه چاب کردند طبعا یک کراس به قول عرام یک حساب میشه الان به این صورت تو زهنم نیمونه جای دیگه دیده باشیم فقط همین کتاب احتجاجمون. هم. از جمله اون عبارات که نزدیک ایام قدیرم هستیم علی یون تفسیر و کتاب الله ودای علیه علاوه این الحلال الحرام. اکثر من احسیه همون و اعرف همون فا آمرو بالحلال و انها ان الحرام فی مقام واحد شاید فا آمره باشه به سیغی باشه. یعنی مراد حضرت این است که یک احکام کلی داریم یک مسائل حلال و حرام هستی در طی تاریخ واقع میشه اونها را باید از اهل بیت سوال بکنیم اکثر من افاضی احس... علما یعنی اون چیزا در مقام امامت برمیاد ولی اگه بفهمه که من نمی‌خوام حله اینجا باید بکنم و با در طی تاریخ در طی آینده میشه که توسط اهل بیت فا امرت... فامر فامر فانا اخذ البيعه علیكم و صفقت منکو صفقت در جریان در جریان کسب در جریان به اثر شد چون این برای بیعت بود به قبول به جای وعید در این رو دو بصورت صفقه بوده و بصورت بیعت بوده به قبول ما تو بیهن الله از داجل فی علیه امیر المؤمنی و لعیمت من بعده ما آشران ناس و و آیاته و انظروفی محکماتیه و لاتتبه و, و از کلم تعبیر این تعبیرات سبوت زمان رسول الله روشن نیست فوالله لن و بیان لکم زواجرهو وَلَا يُوزِهِيَا يُوَضَّهُ لَكُمْ اَنْ تَسْتِیْرِهِ اِلَّلَلِهِ اَنَا آخذون بیادی این درسته این بحث کلامیست رفتی به بحث اصولی نداره حدیث شماره چهل و چهار این حدیث هم فعلا اون چه اختیار ما رسیده مثلا این حدیث غریب از منفردات مرموم تبرسی در احتجاجه یعنی این حدیث ما فعلا هیچ دیگه نداریم دیگه. این حدیث رو نداریم و انصافا اگر این حدیث درست باشه این جز اوائل کلماتی است که از صحابه شده در تقسیم بندی آیات قرآن این که خیلی مسئله این قصیم ماننوی داره انصافا این اگر حدیث درست باشه مثل همون حدیث مرسدی که در محاطن از امام صادق وانوان نامه بود این به عنوان نامه نیست کلام امیر المؤمنینه و اگر این درست باشه ما قبل از این اصولا تقسیم آیات قرآن رو بحث به حسب استنتاج همین بسی کلام اصولیست ما نداریم این اولین کلامه تا دیروز اگه آزم باشه مثلا اولین حدیث از ما باقیه بود که ناسفن من سوخن آم من خواستن از امام رضا بود اما این تقسیم بدیه دیگریه امیر المؤمنی فی احتجاجی علا زندیغ سأله و آیات متشابه من القرآن فعجابه کلمه زندیغ رو عادتاً باید در کوفه به کار برده باشن زندی زند, زند, زند, زند, زند و پازن کتاب معروف زردوشتی ها زندیغ ظاهراً معرب کلمه زندیم باشه که کسانی که دینشون زند یعنی مجوزی لذا اگر علا تردیری که باز هم درست باشه اینم علا تردیری چون سند نداره مرسله این سوال و جواب در کوفه واقع شده نه در اول امره رو و که در مدینه بودن سهل و انعایات شاید در کوفه که ایشون تشوه بردن چون کوفه خب ایرانیا زیاد بودن اینا فرهنگ صادق داشتن اینا میخواستن اعتراضاتی به قول فرهنگی و علمی به قرآن الا انقال و قد جعل الله دل یعنی اینطور نیست که شما به ظاهر بعضی از آیات توسط کنید و فر علل عباد تااعت هم بهقولی تعالی اتی الله و اتی الرسول رسول او منکن از کردن در تفسیر بالان آدم ما را کنه هست روایت سرش صیهح از صادت ها نظر خاصه فقط در حق ماسیینایی وره. و به قولی این فالا و اورد دو در رسور القول امر منهم لعلعلم من ها لین اونایی که استبات میکنن در روایات تفسیر شده به خصوص اون به سرمون داشکن. از کلمه استباد حال اصلش شد که نفسود جای خودش اصولاً درآوردن آب را از ق شاه مید بقل ما آب را از قهر شاه بالا بکشه استبات تناسبش معلومه به قوله و الله و كن مع صادري اصلا روایاتی داریم از اهل بیت در کتاب حجه کافی هست که مراد از صادرین در اینجا اهل بیت و به قولی ما يعلم تحويله الا الله و راسخون في که در بحث های خدا آیه همین الانم هم اشاره کردم در ابن عباس از قتاده به نظر نه اونم گفتم انم نراسخین از ابن عباس نروال شده امم که اصلاح که ما راسخین فلعلم و به قولیه تعالی وعت بیوت من عبابها که عبارت از بیت بیتوش و البیوت یه بیوت العلم التي استودع احل انبیاء انبیاء و رو گرار دیم و عبابها اوصیاء هم فکل عمل من اعمال خیل یجري علا غیر عید الاوصیاء و اهوده و حدوده و شرایعه و سننه و معالم دینه مردود و غیر مقبول مثل همون روایاتیست که در باب کتاب خوبیه کافی داره کتاب ایمان کفر کابیجه دومان که باید همه به ساعت ولی الله باشه و اهل او به محل کفر در خیفت ارز کردم سابقه کفر جز به به اصطلاح کلماتیست که در روایات و آیات از قبیل کلی مشکه که در اجاز مختلف داره و اهل او به محل کفر و این شامل هم صفت ایمان تا اینجا خب تاکید البته عسکری در مقام علامه حریری به این جور که ما راه غیر از اهل بیت نداریم این درست در فهم کلیه شریعت با اهل بیت مراچه بعد این نکته این معضله بود ثم ان الله قسم کلامه و ثلاث درسان این نکته فنی اینه ثم ان الله سبحانه و تعالی قسم كلامه ثلاث درسان فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل و وقسما لا يعرفه الا من صفا ذهنه ولتقى حسو وصح تنيره ممن شرح الله صدره للإسلام وقسما لا يعلمه الا الله وملائكته والراسخون في العلم رسیم این تقسیم بندی سلاتی این رو ما قبل از این نداریم بعد از این هم نداریم برای در کتاب ترگیر مرموم شیفتوزی در تقسیر تقسیم بندی برای آیات میکنه اما این تعبیر که جهر سمه بعدا تعبیر انالله قسم کلامه چون ظواهر آیات کتاب که این نیست مثلا این یک نوع تفسیر و تحضیلی که پیغمبر به امیر رو باند الله خیلی لطیفه کلام قشنگ همه به این کلام قشنگ و متاسفانه سند نداره سمه الله قسم کلام حسلات درستان یه باید یه برای که دقیقه و بعد ببینید دعوای اخباری با حصولیش طور شد اینو ما خواهی دقیقه شده سمه الله قسم کلام حسلات درستان فجعل منو یارف و هلا و قسمم لا یارف الا من سپا ذهنو و لا تو فحسو و ساحت همیزو مم من شرحال لا و صدره للاسلام و قسمم لا یعلم الا الله و الملائک و ملائکه توم و الراسخونه فلاین فهمیدن؟ این یه دو مشکل کار این شد اخباری ها آمدن گفتن قرآن از قبیل سومه. اصولیا ها آمدن گفتن قرآن از قبیل دومه نکته فرمی خوشه چون حضر فرمدن و لا یعرفو الا من صفاقه و لطف حسو و صحه تمیزو گفتن این یعنی مشهرین من لطف حسو. الا من تباون و لثو فهسو و صح تميز این کنایه از مشهوره اطبقا لا یعلم رسول الله و اسم ثوون که اینجا لا نیست پس, پس روشن شد بحثی آمد این حدیث هم مشکل اخباری وسیه نداشت به یک حالا از این اختلاف مولا محمد علی استرابادی با اصولیا روشن شد اصولی همین یعنی ما قسم دومی قسمن لا يعرفو الا من سفا بهنو و لطف حسو و سحه تمیزو یعنی که پس این سن به قرآن مراجعه کن اخباری بگه نه زباق قرآن سومیه، و قسمن لا يعلمو الا اللہ و ملائکتو و راسخون فلعلم در حرفت مطلب در اون جای هم گذاشت در اون روایت محاسن هم گذاشت و این نما فعل ذالک لعلا یدعی اهل الباطل المستولین باید هم باید المستولون باشه المستولین على میراث رسول الله من علم کتاب الله هم این در اون روایت هم گذشت که خداوند کلام و یک تا مردم احتیاج به اهل بیش دیگه بکنن یحتاج و این فعل ذالك لعلا یدعی اهل الباطل المستولین او باید مستولون باشه. حلا رسول الله يدعي من علم کتاب لم یجعل الله لهم ول یهود همون اضطرار الال ایتمام بمنولی امرهم و بمن ولي امرهم فستک برو انتاعته اما علمای اهل سنت این کار نکردن خودشون مسلمین به کتاب مراجعه کردن این ارز کدم انصافا این حدیث دلالتش بر مطلبی که حضرات اخباری گفتن اجمالاً بر نیست مرحوم صاحب وسائل اقول و لا یخفا ان آیات الاحکام به نسبت علال احکام نظریه کلها من القسم ساله و سوریا موقع نمیگه نظر افرسانی ولا اقل منر احتمال هو کافه کیف و نسخفی ها کفیرون جدن بلایو جد و را خیلی این عبارت صاحب و صاحب هم دوزه و نسخفی های نفیارات الاحکام را خیلی عزیبه شاید در کل آیاتی که ادعای نسخفی هایی بیشتر نبودن مرحوم آرکویی که نسخفی کلا منکر می‌ادت قرآن نرس نذارید احکام نسخ شده اما در قرآن نذارید این تعبیر و فیاض کفی اون جدا ما که صدر نهابتی انصافا آ ما احتمال داره نه احتمال داره برای شخصی خیلی چون خیلی از احکام تراسی روابطی باشه که ای تخصیص آیه در اینجا مرحوم آیه شعراعی تون شدن ایشان یک حاشیه تونیم آیه شعراعی مرحوم اشرفی هستند رحیم الله دارن آیون مراجعه کنید قشنگ خوب نوشته بعدش هم ایشون یک چیزی داره ولی عجب ایشون در خود مرحوم هاشمیه یه وقت همشون اصلا باید فائدهش از ليس فی هاد الباب حدیث الا و يدل علی مراده یه الا زیادیه الا ليس فی هاد الباب حدیث يدل علی مراده به این توریه نیست ایشون قرض داد و صلی الله علیه